بسم الله الرحمن الرحيم شمار السلام عليكم أنواع القياس بأكبر الإلة أولاً قياس الأولى وهما كانت إلة الفرق الأقوى منها في الأصل مثال قول تعالى فلا تقول لهما أفن فالنس يحرم التعفيفة والإلة هي ما في هذا اللحن من إذا وهذه الإلة موجودة في ضرب الوالدين بشكل أقوى مما في الأصل فيكون تحريم ضرب الوالدين بالقياس على موضع النص بتریق القياس الاولی میفرماید قیاس اولا آن است که علت وجود علت در فرع قویتر باشد از وجودش در اصل مثالش مانند این آیه کریمه که الله متعال میفرماید به پدر و مادرتن حتی افهم هم میگه اوف گفتن را حرام قرار میدهند علت هم چی هست؟ در اوف گفتن علت اینه که اذیت میشند آزارو اذیت میشن موقعی که شما میگی اوه یا فلان ها یه حرفی که دلشو میشکنی پدر و مادر چی میشن از میگه همین اذیت همین علت از آزار دادن اذیت به شکلی قویتر. در زدن پدر و مادر وجود داره اصل اف گفتن چون براش نست داریم ده. ضرب والدن که فرعه میخوایم قیاسش بگیریم بر اف گفتن این علت در زدن والدن به شکلی قوی تر چیه؟ وجود, وجود داره ده. پس حرام باشد زدن والدین از راه قیاس ولی از راه قیاس چی؟ ده. بله این قیاس قیاس چه هست؟ اوله هست ما قیاس گرفتیم اینجا زدن والدین رو بر عف گفتنشان بر نسی که بود در مورد اف گفتن ولی از طریق قیاس اولا چرا قیاس اولا؟ به خاطر این که علت در فر هست؟ ثانيا القياس المساوي وهو ما كانت الالة التي بني عليها الحكم في الاصل موجودة في الفرع بقدر ما هي متحققة في الاصل. قياس مساوي عن قياسها كاللات التي كحكم در اصل برش بناشده است؟ التي كدر اصل وجود داره بشكل مساوي در فرع موجود باشه در اصل موجود باشه. همون ایلتی که در اصل وجود داره، به شکل مساوی به همون اندازه در فرهم موجود و محقق باشه. مثالش قوله تعالی ان الذين يأكلون أموال اليتامى" و ایلت الحُكم هي الاعتداء على مال التي ما ناس داریم که میگه همانا کسانی که اموال یتیمان را میخورن إلى آخر. خب حرامش قرار داده خوردن مال را. میگه ایلت هم علت اعتداء و تجاوز بر مال یتیمه میگه در قران اومده که آقا شما اموال یتیمان رو نخورید ها میگه همین علت در سوزاندن مال یتیم وجود دار شما اگر چه مال یتیم رو بخورید چه اونو رو همون تجاوز به مال یتیمه میگه و احراق مال یتیم ظلمن یساوی واقعت نصف الا سوزاندن مال یتیم از روی ظلم مصاوی هست با همون علتی که در واقعی که براش نسبود وجود داره فیكون حکمه حکم فیكون حکمه حکم اکله ظلمن. پس در نتیجه حکم سوزاندن مال یتیم همون حکم خوردن مال یتیم رو روی ظلم میگیره خدا برخش خود القياس الأدنى أدنى. وهو ما كان تحقق الإلت في الفرق أضعافها مما في الأصل من قياس الأدنى أنا كتحقق الإلت در فارع ذائف ترأس أصل باشا ذائف ترأس؟ أظن كترأس بأس الإلت حردجا موجودة وليد در فارع ذائف ترأس ببني در قياس أولى إلت فرق بترمد در قیاس مساوی به شکل مساوی هم در اصل در فرع یک اندازه وجود داشت ولی در قیاس ادنا علت در فرع ضعیف است کل اسکار فهو علت تحريم الخمر ولكن قد يكون انا على نحو او اف في نبيد آخر وان كان في الاثنين صفة الاسكار مانند اسكار و مسکرندگی که حرام بودن شراب است شباصابیگه همین علت در نبیزی دیگر به شکلی ضعیف‌تر وجود داره یعنی مسکولندگی وجود داره ولی نه با اون قوتی که در اصل وجود داره حالا یک مسئله اگر مثلا در قرن معاصر قرن 21 یک نوع کرسی تولید بشه که به مراتب از شراب قدیم کنندگیش بالاتر باشه اون موقع قیاس قیاس چی میشه نه, نه میشه اولا میشه من گوه اگر مثلا در قرن محاصر بیان یک چیزی خوب کنیم که به مراتب مسکنندگی از شراب قدیم قوی تر بوده مو اما موقع قیاس قیاسی چی؟ اولای پس اگر خب قیاس ادنه اینه که علت در خر زیفتره معنی اسکار علت هست برایش خرام شرط خمر شراب انگور حالا میگه در همین وصل همین علت راسی در چیزی دیگه وجود داشته باشه در نبیزی دیگر وجود داشته باشه ولی زیفتر اون موقع قیاس میگیریم اون نبیز رو ولی به طریق قیاس ادنا هست چون در هر دو تا وجود داره در هر دو تا این علت وجود داره پس این بود انواع قیاس خب حجیت قیاس که آیا اصلا قیاس علتی یا نه چی؟ دلیلی برای اثبات احکام میونه که بحث مهمی خیلی مهمه از هم که تا آخر کتاب دیگه بحث حجیت قیاس این موضوع وزنه بود دیگه تمام بود آخرین بحثی که ته کتاب یه بحث حجیت قیاس که آیا قیاس حجتی یا حجتی نه آیا ما توانی از طریق قیاس حکم ثابت کنی یانه حجیت قیاسی چیزه که نه شراه دیگه باهم برسه و بهترین بچه که وقت هم وقت زاد چنده اولا یعنی به نظر شو؟ اولا نو بیس تفاقی